إن الله يحب الذین يقاتلون فی سبیله صفا كأنهم بنیان مرسوس این مردم در این قدرتی که نشن دادند بهدنیا فهمندند قوت ایمان و قدرت یقین را و راستی دست و بازوی این مردم مجلای قدرت الهی شد این داستان بازیچه نبود یعنی بعد از پیدایش این انقلاب و ظهور قوت ایمان و قدرت دین در این مرزبون اون هم قدرت ایمانی که از مرکز حکومت شیعه به وسیله شخص اول روحانیت تشیع جلوکت کمر دنیا را شکست به دعوت یک بزرگ مردی که رأس روحانیت شیعه است و شما را فرا خونده برای این میدان برای نگهداری دین و برای حفظ اسلام و برای سیانت قران پس بدون تردید شما مردم کسانی هستید که آمدید فی سبیل الله به جنگی سبیل خدا همین خدا همینه والله ها به اون چطور به او قسم دادیم و به اونچه که نزد توس از مقدسات تو را قسم می دهیم که ریشه اسرائیل را بکن خدا مردم بیچاره لبنان را نجات بده و را ریشه نیشه مردمانی که تمع به این مملکت دارند چه از کفار بحث عراق و چه از بقیه کفار در شهر و قل و بفرما خدا یا ارواح کسانی که در راه حفظ این انقلاب مقدس جان خود را نثار کردن با سید و محشور کن از مندگانشون عجر جزیل و سبر جمیل انایت بفرما با. خدایا به اون کسانی که الان در میدان جنگان باونان با کمک کن با. خدایا به این سربازان مدد کن خدایا به قوت خودت اینان را قوی کن خداونده به قدرت خودت اینها را مقتدر کن خدایا به عزت خودت اینها را عزیز کن پروردگارا و مخالفین و معاندین و دشمنانشون را مخزول و منکود بفرما وجعل اللهم عذابه و امورنا خیرم